بوک سؤال کردن گذشته یک اسئله الماضی واحد اسئله الماضی واحد شما چقدر نوشیده اید؟ کم شربت؟ کم شربت؟ شما چقدر کار کرده اید؟ کم اشتغلت؟ کم اشتغلت؟ شما چقدر نوشته اید؟ کم کتبت کم کتبت؟ شما چطور خوابیدید؟ كيف نمت؟ کیف نمت؟ شما چگونه در امتحان قبول شده اید؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ شما چگونه راه را پیدا کرده اید؟ وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ شما با چه کسی صحبت کرده اید؟ مع تکلمت؟ معمن تکلمت؟ شما با چه کسی قرار ملاقات گذاشته اید؟ معمن تواعدت؟ مع تواعدت؟ شما با کی جشن تولد گرفته اید؟ معمن احتفلت بعیدی میلادک؟ معمن احتفلت احتفلت عید میلادک؟ شما کجا بوده اید؟ کنت؟ كنت؟ کنت؟ شما کجا زندگی می‌کرد اید؟ کنت كنت تسكن؟ اين كنت تسكن؟ شما کجا کار می‌کرد اید؟ کنت كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل شما چ توسیه اي كرديد بماذا نصحت ماذا نصحت شما چی خورديد ماذا أكلت؟ ماذا اكلت شما چه اطلاعاتي کسب ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربه؟ شما با چه سرعتی رانندگی میکرده اید؟ کم كانت سرعتك في السیر؟ کم كانت سرعتك في السیر؟ شما چه مدت پرواز کرده اید؟ کم مدت طایرانك؟ کم مدت شما تا چه ارتفاعی پریده کم الارتفاع لذی قفسته؟ کم الارتفاعو لذی قفزته؟ لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید